عکس روی تو چو در آینه جا افتاد عارف از خنده می در کمع خام افتاد حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوها افتاد این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد غیرت عشق زبان همه خاسان ببرید که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد منز مسجد به خرابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار هر در دایره گردش ایام افتاد در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد آن شد ای خاج که در سوم عبازم بینی کار ما با رخ ساغی و لب جام افتاد زیر شمشیر غمش، رَقص کنان باید رفت کان که شد کشته او نیک سر انجام افتاد هر دمش با من دل سوخت لطفی دگر است این گداب این که چه شایسته انعام افتاد سفیان جمله حریفند و نظر باز ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد